حکایت یکی دوستی را که زمانها ندیده بود، گفت کجایی که مشتاق بودم، گفت مشتاقی به که ملولی، دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم، دامن از دست، معشوقه که دیر دیر بینند، آخر کم از اون که سیر بینند. شاهد که با رفیقان آید به جفا کردن آمده است، به حکم آن که از غیرت و مزادت خالی نباشد. ازا جعتنی فی رفقتن لتزورنی و این جعت فی سلحن فا به یک نفس که برا یار با اغیار، و نماند، که غیرت وجود من بکشد، بخنده گفت که من شم جمع عمی سعدی، مرا از آنچه که پروان خیشتن بکشد.